فعل دانه دو گونه استعمال داره یک استعمال لازم دو استعمال متعددی دانه که به معنای لازم هست معناش اطاعت و انقیاده با لام هم است متعددی میشه یعنی لام میاد بر سر اون کسی که اطاعت برای اونه دانه زیدون لله یعنی زید برای خدا انقیاد و اطاعت کرد ولی دانه که مستقیم مفعول میگیره به چه معناست؟ به معنای زلیل کرد خاضع کرد دانه زیدون نفسهو یعنی زید نفس خودش رو خار کرد زلیل کرد منقاد خودش کرد خب با با هم استعمال میشه دانه به این با بر سر چی میاد؟ دانه به بر سر اون چیزی میاد که از جبه. اون استفاده میکنم من برا شما انقیاد و اطاعت میکنم دانه به مثلا انا دنتو به حاضر روش مثلا از این روش لکه یعنی من با این روش منقاد تو شدم پس به میاد بر سر اون چیزی که واسطه بین انقیاد من به شما میشه یعنی در اون موجه به این بیاد میشه اینجا رو اینجا چون مهم هست اینجا رو بهش میپرده به مرور زمان این لغت اومده این کلمه دین از حالت مستری در اومده اطلاق شده به اون چه ای که انسان بهش معتقد میشه، باور پیدا میکنه و در برابرش خوزو پیدا میکنه. یعنی مثلا من در زندگی خودم یه شیوه ای دارم، یه روشی دارم، یه چیزایی رو قبول دارم. چون من به اون روش هستم و این روش رو در دلم قبول دارم، این رو بهش دین است استعمال شده. یعنی دین استعمال شده به اون روش و منش و اون چیزی آه که انسان بهش تعبد داره و قبولش داره اگه قبولش نداشته باشه بهش دین نمیگن لذا آیه شریفه هم هست که لا اکراحف دین اصلا دین یه چیزی که من قبولش دارم نمیتونه یه چیزی دین من باشه من مجبور شده او رو بپذیرم اصلا در دین اجبار من یعنی توجه لغت باعث فهم بهتر اونهای هم میشه بعد همین حالت اومده در قرآن استعمال شده در قرآن دین به معنای اون چیزی که انسان قبولش داره طبعه اون داره پیش میره استعمال زیادی شده یعنی در وقت همون آین بله این نکتره هم باید صوبتر ارزمی کردم الان بگم و اون این است که بعضی ها اومدن گفتن که دین به معنای عادته به نظر میرسه که این برمیگرده به همون روش و منشه که منقاد انسان هست چرا؟ چون هر عادتی که انسان داره یه حالتی براش پیش میاد که منقاد به اون حالت هست مثلا من یه کاری رو طبق عادت هی انجام میدم یعنی خاله شدم در برابر اون کار یعنی این هم برمیگرده به اون ریشه خضوع و اطاعت و امتیار نقطه‌ای که در اینجا باید متوجه داشته باشیم خیلی از کتاب‌های لغوی تاجی شیرین‌آبادی اومدن گفتن که آقا دین به این معانیست عادت، خضوع، جزا، حساب، حکم به این جوری شمردن این قبول نیست چرا چون این دین یک کلمه است اگه اشتراک لفظی منظورتونه خب این اولا معنی زیادی می‌بره یعنی مثلا پنگ بار این کلمه از توی واژه تعینی یا تعینی وضع شده باشه این یه چیز عجیب بیست یعنی اشتراک لفظی گهگاهی باید ما قائل بهش بشیم نه اینکه مثلا هر چیزی که لغبیین جلو این کلمه نوشتن این رو بگیم اشتراک لفظی لذا همشون باید برگردن به یه چیزی در اصل و تعدد معانی مربوط به مسادی و موارد کاربرد استعمال بوده باشه این قابل پذیرش ولی اینکه یک کلمه پنج تا من کتابای متأخره مثلا میگن دین پنج معنا دارد همین لغت اینکه رنگ کلی داره همه بر به اون شباهت کلی میگه ضربه این زدن میگه ضربه فتن یعنی یعنی اشتراک بلد. معنوی دارن نه اشتراک لفظی که دو بار مثلا بعد ما میایم در قرآن در قرآن کلمه دین به اون معنای انقیاد و یا اون روش مورد انقیاد انسان که انسان بهش تعبد داره فراوان است. شده در, در یه جایی که میگیم آیین جه... کلمه کجاییه نه کیش و آیین به معنای اصطلاحی این رو یعنی به مرور زمان یعنی ما حتی در قرآن هم در سور اواخر آیاتی که نازل شد این حالت رو احساس می‌کنیم اکملت لکم دینکم یعنی دین یک مجموعه ای گویا هست که نیاز به تکمیل داره ولی در آیات مثلا مکی یا اول مدنی دین به این معنا که یک مجموعه ای از آیین رو شه بده رو آدم نمی‌بینه بیشتر به اون یعنی می‌خوام بگم که دینی که به یک آیین بندی شده که بهش بگیم این یک مجموعه از آموزه هاست فلان این رو یا در قرآن استعمال نشده یا اگر استعمال شده مربوط به همه آیات سالای آخر نوزول قرآن هست که دیگه تو این ده در یازده سال یواش شواش انصراف پیدا کرد دین به این مجموعه مثلا و موینا ولی در استعمالات قبلی رو اینجوری نمیبینیم شاژو خلاصه‌ای از قرآن این دین به معنای از آداب یک دین آسمانی این از جهت لغوی قبل از اسلام استعمال شدنش اصطلاح شده, شده نیست خب تو همون مکه هم بالاخره آین داشتن <تصفيق> بالاخره وقت اضافه شده هی اضافه, شده. اضافه های... دین... این آین تا... تکمیلی آین که از آه آین که از حضرت آدم بوده منطقه صحبه سر این است که کلمه دین رو عرب به این آینه میگفته این دلیل منش نداریم در استعمال میگم تو استعمال قدر رو قد که فعلاه خودش رو داشت هم. ولی وقتی من در اصطلاح قرآنی و مخیرم پسندیم از همون ابتدا این به این که دین به معنای آینه دین در آینه استفاده شده این معنی هست که مفهومن یعنی استعمال با معنای لغوی احسن که فرمودید فرمودید فرمود. معنی استعمالیش از همون ابتدا حالا حتی پنج تا حج بوده از موعی دین پنج تا مثال میگم خودش آین اون دیگه یه آینی منطور در گزار زمان دیگه وقتی به مدینه میرسه به سالهای نوم مقامل کامل میشه سال دهم کامل میشه اما از ابتدا آین بوده در اصطلاح قرآنی و استعمال قرآنی و علاق با معنی لغت این آین نیست ما فقط در قرآن یه جا داریم که به معنی جزا کلمه مالکی یومدین یعون مدین سیزده بار در قرآن استعمال شده یعون مدین این دو کلمه هم سیزده بار در قرآن استعمال شده اینجا لغویین گفتن به لعنی جزاست بعضی هم گفتن به لعنی حساب اینجا لغزشگاه یعنی یک مراجعه کننده به لغت ممکنه اینجا باز اشتباه کنه کلمه جزا از روایات اومده همکم اینکه هم. که کلمه حساب هم از روایات شیعه آمده لذا جاهایی که در روایت معنا میشه یک کلمه اونجا لرزشگاه ماست یعنی روایت امام معصوم در صدت تفسیر لغ... لغوی این کلمه نیست چه بسا یه چیزی که محفوما جداست ولی مستاغن مشترکی رو داره میگه چون او هدفش کلاس لغت گذاشتن نیست هدفش موهد این که مستاغ در نظر امام علیه سلام هست نه محکوم حیرگی کلمه این لذا به نظر باسته. باسته. لذا به نظر مرسه یعنی بنده با این ورسه اولیه که کردم به نظر مرسه که یوم الدین به معنای روز جزاز که ما معنی میکنیم نیست یوم الدین یعنی روزی که دین اونجا هست دین به چه معنا شد دین به معنای انگیاد و به معنای اطاعت یعنی روز باید. روز اطاعت نه روز نتیجه اطاعت یعنی میرسن ب... قسمت که اصلا جزا چرا این وسط اومد ارتباط چون بیرونی با این معنی داره اصلا امام جزا و حساب رو اغرده نه اینکه که کلمه دین به معنای جزاست یعنی ما قبول داریم یوم الدین یعنی یوم جزا ولی قبول نداریم که دین به معنی جزاست لغتا یوم دین یعنی روزی که روز دینه دین رو بر اساس لغت به معنای اطاعت یا عادت شد عادت هم برگردوندیم به اطاعت روز اطاعت و انقیاد یعنی چی؟ یعنی روزی که همه منقاد میشن از چه جهت؟ مستاق خارجیش در چنین روزی خدا حکم میکنه جزا میده حساب, حساب رسی میکنه همه هم منقاد میشن روز طبعیت از حجمه که هیچ کد مخالفت نمیتونه, نمیتونه بکنه. یعنی لذا ما جزا رو نیاییم چون اگه قائل به معنای جزا بشه میشه اشتراک لفظی که معنی خودش رو داره باید میشه و ولذا ما جزا رو به معنای لغوی دین نمیکردیم. دین رو برمیگردیم به همون معنای اصلی خودش یوم الدین هم میشه روزی که همه منقاد میشن لذا مثلا صاحب مقایز که اشتباه نکنم گفته یوم الدین یعنی یوم الحکم حکم یعنی همه باید انقیاد داشته باشن، و حکم داده میشه قضاوت میشه یا همون حسابی باسته. که در روایات ما امام باقیر علیه السلام گفته حساب هم برمیگرده به همین یعنی یه روزی که همه منقاد چی هم حساب رسی قوم الحساب ولی جزا ایدالی فعبا امرون یونقاد الله مقابیزه مجم مقاییسه مالکه ها میدین یوم الحکم یوم الحکم چجوری معنا میکنه؟ بله نسبت به حکم همه این قیاض دارن و طبیعتا کار نمیتونن بکنن یعنی جبت... اینکه میگه بخواست یوم الحج اساس اون معنای عادیه نمیگه ها بله چون دین به معنی حکم نداره خیلی تعبیر میکنه یعنی یه چیزی که اگه کسی بهش توجه نداشته باشه این کلمه تو اشتباه بیفته اینه بعضی وقت‌ها یه چیزی که اشتراک مستاقی با این واژه داره به عنوان معنای اون واجه تلقی شده مثلا همین اه. نه که معنای لغت دین باشه نشون میده ابن فارس شیعه بوده شیعه نشون میده این از احادیث و ارادتی که به احادیث عیم علیه مسلام داری به هم نقش دارید ذهن خود به خود ذهن رو میبره هم هست بله بله یعنی هم هست. مثلا ما میبینیم از همون ابتدا میگن دین به معنای جزاست دین به معنای حساب است اینا متأثر از احادیث شدن آه. یعنی برعکسش هم هست یعنی بعض وقتا تفسیر و لغوی متأثر از حدیثی شده که در صدد تفسیر و لغوی نبوده معمولا تو سنهای های اول بزرگانی که مثلا قراره چهارم، سه، بوم این ها هستن این مشکلات کم کمتر دارن ها؟ دارن، ولی کمتر تو از بیشتر تو معنی طریقی و مجازی و اینها سهی بکنن شمایی فحصان میدارم آن شما که در بحث چیز دنیمه هست، بنامه بای شریفه چه بعد می فرمود که این که اهلی طریقه سلام کنان هم دریمت رو احمد رو از تصویر خود اینهاشون اهل لسان بودن خود اینشون دندگیره یعنی این رو دقیق می که خود این حجته یعنی اهل لسان می ده نه اتفاقا برکس چون ایشون نظرشون نیمه نیچه به اون انتقاد کرد چون تعمه معارف دینی رو میخواستن به مردم انتقال بدم. خیلی پایبند لغت و اینا چه بسا نبوده باشیم شاید غنیمت در لغت فقط به غنیم جنگی گفته میشه ولی حضرت توصیه داره چون قوم دینه هست؟ تو حج و تو سدی داشی می‌خواد. چون اون از کلمه نمی‌دونه. اون غیبی عارف گرفته. اون ماه مغرنتم تو دیگه. اون مغرنتم قوم دین ای مطیع اون منقادون. همین رو می‌ذاریم یوم الدین همین همی میشه. روزی که همه منقادن و همه مطیع. هم. تسلا <تصفيق> کوم الله. داشجل می‌فرمایید که معنای لغویش نتیجه این که اولا ما باید ببینیم در استعمالات که این دین به شکل فعل استعمال شده یا به شکل ازم اگه به شکل فعل استعمال شده لام اومده بعدش یا ب اومده یا مستقیم مفهول گرفته اینا رو باید توجه داشته باشیم اولا ثانیه این که ریشه لغوی با تحلیل موارد استعمال مخصوصا استعمالات قرآنی ما ببینیم که دینشش برمیگره به همون انقیاد و اطاعت و دین چون یه چیزی که آدم قبولش داره متعبد بهش هست به آین دین گفته شده چون مورد انقیاد انسان هست پس معنای دین به بارت هست انقیاد و اطاعت معنای اصیل اصلی ولی دین اومده در ما دان بهی هم استعمال شده دلوقتي. یعنی اون روش نه دان بهی اون به برسر همون دین میاد اه. یعنی مثلا دین تو به الاسلام دین تو به اون روش خودم با میاد برسر اون آین و روش نکته بینهایی مثل ابو الهلال اومده فرق های بین دین و شریعت و ملت و اینها رو هم لابد متعالف فرموده اینان فرقایی رو بهش شو... قائل شده که نمیشه همه شو رد کرد چیزای خوبی تو اون فرقا نفته است. استعمالات نگاه کنه ولی زایشون میگه که مثلا ما میتونیم دین رو نسبت بدیم به اشخاص ولی شریعت رو نمیتونیم بگیم بگیم شریعت آی سفری شریعت آی دست شریعت تعدد. ولی واحسی. دین به تعدد انسان ها متعدد میشه به نتیجه رو که در خیلی. لغت بشی در استعمال قرآنی با اون سلسل. اصل لغت به معنای انقیاد هست ولی در مورد اون روشی که انسان بهش تعبود انقیاد پیدا میکنه هم استعمال شده هم در قرآن در